پسهاو هزار یک شب شب چهل و هفتون پیرزن گفت مزاح نمیکنم دختر قمر منظر گفت، اگر توانی که با من کشتی بگیری برخیز. عجوز از این سخن در خشم شد و موی برندامش به سان خارپشت راست گردید و با دلارام گفت، ای روسبی، با تو کشتی نگیرم مگر اینکه خود اوریان باشم. تو نیز اوریان باشی، پس برخواسته، دستارچه حریر بگرفت و جامعه خود بکند و به دستارچهش بنهاد و به افریت و افعی همیمان است و با نازنین دختر گفت تو نیز چنین کن که من کردم شرکان بر ایشان نظر می کرد و بر حیعت عجوز و منظر قبیه او همی خندید پس آن سنم نیز برخواسته شلوار به در آورد آنگاه با عجوز بیاویختند و شرکان سر به آسمان برداشت و خدا را به چیره شدن دلارام همی خواند. تا اینکه که زهر جبین دست چپ به میان دو پای پیرزن انداخته با دست راست پشت گردن او را بگرفت و بر هوا بلند کرد و پیرزن دست و پا میزد و میخواست خود را خلاص کند که بر پشت بیفتاد و شرکان تیغ برکشیده به چپ و راست نظاره کرد. دید که بدی الجمال از پیرزن عذر میخواهد و جامعه او همی پوشاند و میگوید ای خاتون من ذات و دواهی من نخواستم که تو را به زمین بیاندازم ولی تو دست و پا زدی و خود برافتادی شکر خدا را که آسیبی به تو نرسید عجوز با او سخن نگفت و پاسخش نداد برخاسته شرمگین همی رفت تا اینکه از دید پنهان شد و آن کنیزکان همه بازوان بسته بر زمین افتاده بودند و پریپیکر در میان ایشان ایستاده بود ملکزاد شرکان با خود گفت هیچ رزق را بی سبب نتوان خورد و اینکه مرا خابر بود و اسب بدینجا آورد سبب این شد که این سنم با کنیزکان دیگر انیمت من باشند آنگاه اسب خود را تند براند و با تیغ برکشیده نزدیک رفت و تکبیر گفت ماهروی او را بدید برپای خواست و از سوی نهر که شش زرع بود به آن سوی جست و به آواز بلند گفت کیستی که فرح و شادی از ما ببردی و چنان با شمشیر کشیده آمدی که گویا به سپاهی حمله می کنی بازگو که از کجا آمده و به کجا خواهی رفت و سخن راستگو که نجات در است. و از دروغ بپرهیز که دروغگویان زیانکارانند شک نیست که تو راه گم کرده به این مقام آمده ای خلاصی تو بس دشوار است بدان که تو در سرزمینی هستی که اگر فریاد برارم چهار هزار مرد دلیر گرد آیند اکنون بازگو چه میخواهی اگر راه راست میخواهی بنمایمت و اگر خواهی خفت به چون شرکان سخنان او بشنید گفت مردی قریب هستم و از زمره مسلمین می باشم. امشب تنها بیرون شدم و از برای قنیمت همیگشتم و بهتر از این کنیزکان قنیمتی نیست. همی خواهم که اینها را گرفته نزد یاران خود برم. دختر گفت این کنیزکان تو را قنیمت نیستند با تو نگفتم که راستگو از دروغ به پرهیز به جان مسیح سوگند که اگر نمی ترسیدم که در دست من هلاک شوی، هر آینه چنان فریاد می کشیدم که سرزمین از سواره و پیاده پر می گشت ولی من به قریبان مهرمان هستم و آزردنشان روان ندارم هرگاه تو قصد قنیمت داری از اسب فرودای و به دین خود سوگند یاد کن که دست به سلاح نبری و با من کشتی بگیری اگر تو بر من چیره شوی مرا بر اسب خویش بنشان و این کنیزکان نیز بگیر که همه قنیمت تو هستیم و اگر من بر تو غالب آنچه که دانم بکنم ولی سوگند یاد کن که من از مکر تو ایمن باشم و به سوی نهر بگذرم و به نزد تو بیایم. ملک زاد شرکان طمع به گرفتن او کرد و با خود گفت او مرا نمیشناسد که من دلیر و شجاع هستم. پس با ماه روی گفت به هر چیز که تو اعتماد داری سوگند یاد کنم. اگر تو بر من چیر شوی، مرا چندان مال هست که خیشتن بخرم و اگر من بر تو قلبه کنم، قنیمتی بزرگ هستی. دختر گفت، من در سر این پیمان هستم. تو سوگند یاد کن بر کسی که روان بر تن بیا و شریعتها به ما بیاموخت. شرکان به دانسان سوگند یاد کرد. دخترک سوگند او بپذیرفت و از آن سوی نهر بدین سوی است و خندان با شرکان گفت که دوری تو به یارانت دشوار است تا زود است به نزد یاران خود شو بیمههان دارم که بامداد شود و دلیران بیایند و تو را تعمهٔ سنان و نیزه کنند این بگفت و روی از شرکان بتافت شرکان گفت ای خاتون آیا مرا غریب و دلشکسته گذاشته همین روی؟ آن لعبت چین بازگشت و بخندید و گفت حاجت خود با من بگو شرکان گفت چگونه به سرزمین تو آمده خوردنی نخورم و بازگردم من اکنون از جمله خادمان تو هستم دخترک گفت لییمان ابا کنند و از مهمان بگریزند تو بر اسب بنشین من از آن سوی رو تو از این سوی برویم تا مهمان من شوی شرکان فرهناک شد و زود بر اسب بنشست جمال از آن سوی نهر رو ملکی زاده از این سوی همی رفتند تا اینکه پلی دیدند چوبین که چوبهای آن را با زنجیرهای آهنین به هم بسته بودند شرکان ایستاده بر پل نظاره می‌کرد. دید کنیزکانی که کشتی می‌گرفتند و بازوانشان بسته بود به دانجای ایستاده اند آن زهر جبین با یکی از ایشان به زبان رومیان گفت که لگام اسب بگیر و به دیر اندرار پس کنیزک از پیش و شرکان به دنبال از پل چوبین بگذشتند شرکان به وحشت و حیرت اندر بود و با خود می گفت کاش وزیردندان با من بودی و این کنیزکان بدیدی پس ملک زاده با آن سنم فتان گفت من اکنون مهمان توام و بر تو حق صحبت و حق زیافت دارم و عهد تو را پذیرفتم باید بر من ببخشایی و با من نکویی کنی و با من به شهر اسلام روی و شجاعان و دلیران را تفرج کنی و مرا نیز بشناسی چون آن بدیع الجمال سخن شرکان بشنید در خشم شد و گفت به حق مسیح که من تو را خردمند میدانستم. اکنون از فساد با خبر شدم چگونه از تو پسند آید که این سخنان گویی و خیشتن به تهمت اندازی و من نیز چگونه این کار بکنم با اینکه میدانم که اگر من به نزد ملک نعمان حاضرایم دیگر خلاص نیابم که او به قصرندر مانند من همسر ندارد اگر چه او را 360 قصر و به هر قصر همسری است چون رشک قمر ولی چون مرا بیند رها نکند و به عقیدت اسلامیان که در فرقان میخوانند ما ملکت ایمان و کم گوید که این مملوک من است پس از من تمتع بردارد و اما اینکه گفتی تفرج شجاعان و دلیران بکنم این سخن نیز درست نبود به حق مسیح که من روز پیش سپاه اسلامیان را دیدم که به سرزمین روم می‌آمدند و نظم ایشان را نظم سپاهیان نیافتم بلکه ایشان را گروهی دیدم هر جایی که به یک جا گرد آمدهاند و اینکه گفتی که مرا بشناس من با تو نکوین نمی کنم از برای اینکه تو را بزرگ دانستم یا تو مرا بزرگ دانی و قصد من از این احسان تفاخر است و نباید مثل تو با مثل من چنین سخنگوید اگرچه شرکان پسر ملک نعمان باشد که در این زمان به دلیری تاق است شرکان با خود گفت شاید که آمدن سپاه را دانسته و شاید این را نیز دانسته که پدر من ما را به نصرت ملک قستنتنی فرستاده پس او را به دین خود سوگند بداد و با او گفت ای خاتون من به راستی سخنگوی پریروی گفت به حق دین تو اگر نترسم که مردم آگاه شوند که از دختران روم هستم خود را به محلکه انداخته با ده هزار تن مبارزت می کردم و بزرگ ایشان وزیر دندان را کشته سپه سالار ایشان شرکان را به اسیری می بردم ای جوان بدان که من خیشتن را به شجاعت نمی ولکن اگر شرکان امشب به جای تو بودی با او میگفتم از این نهر بایدت جست. او نمی توانست و به عجز اعتراف می کرد از مسیح سوال می کنم که شرکان را به سوی این دیر بیاندازد و من در جامعه مردان به مبارزت او بیرون شوم و او را به اسیری به زنجیر اندر کنم بسه به رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است